فصل هشت تمام شب نتوانستم بخوابم. آژیر هشدارنده مهگرگی در تنگه یک نفس نالید و من که حالم تعریفیم هم نداشت بین واقعیتی در هم و برهم هم و رویاهای ترسناک و خشن پهلو به پهلو می شدم. نزدیک سهر صدای یک تاکسی را شنیدم که وارد گذرگاه خانه گتسبی شد. به سرعت از تختم پریدم بیرون و لباس پوشیدم. احساس کردم باید چیزی به او بگویم و خطری را به او گوش زد کنم که شاید صبح برای این کار خیلی دیر باشد. از چمنهای اطراف خانش که رد می شدم دیدم که در ورودی هنوز باز است و او از زور خواب یا غمی سنگین روی میز سالن خم شده بود. از چمنهای اطراف خانهش که رد می شدم دیدم که در ورودی هنوز باز است و او از زور خواب یا غمی سنگین روی میز سالن خم شده بود. خسته و کوفته گفت هیچ اتفاقی نیفتاد. همینطور کشیک دادم و حولهوش ساعت چهار بود که دیزی اومد کنار پنجره و یه دقیقه موند و بعدم چرا و خاموش کرد. خانه گتسبی خیلی بزرگ بود. اما آن شب که در خانه داشت دنبال سیگار میگشتیم. بزرگتر از همیشه به نظر می رسید پرده های شبیه به خیمه را کنار می زدیم و برای پیدا کردن پریز برق دیوارهای دراز را کورمال کورمال دست می کشیدیم تا اینکه یکدفعه یک دفعه سکندری خوردم و روی کلیتهای پیانوی که مثل شبه ظاهر شده بود شیرجه زدم. همه جا گرد و غبار و نشسته بود و اتاقهایی که چندین روز هوا نخورده بودند بوی نامی داد جعبه سیگار را روی میزی پیدا کردم که قریب افتاده بود و فقط دو نق سیگار خشک و کهنه توی جعبه مانده بود پنجره های قدی اتاق نشیمن را باز کردیم و در تاریکی بیرون نشستیم به سیگار کشیدن و دود در تاریکی فرستادن گفتم باید فرار کنیم شک نکن رد ماشینو میگیرن فرار کنم رفیق حالا؟ یه هفته برو اتلانتیک سیتی یا منترال حتی فکرش را هم نمی کرد. تا وقتی معلوم نبود دیزی می خواهد چه کار کند، امکان نداشت برود. به آخرین ریسمان و امیدش چنگ زده بود و من جرأت نداشتم این ریسمان را پاره کنم. همین شب بود که داستان عجیب و غریب جوانیش را با دان کودی تعریف کرد. اینها را به این خاطر برایم تعریف کرد که جی گتس مثل یک تک شیشه در مقابل ستیز جویی تام در هم شکسته بود، و آن زرق و برق رازالود بالاخره به پایان رسیده بود. با خودم گفتم او امشب همه چیز را بی کم و کاست روی دایره می ریزد، اما او دلش میخواست درباره دیزی حرف بزند. دیزی اولین دختر برانزنده بود که در عمرش دیده بود. قبل از آن در موقعیت های مختلفی که البته نمی گفت چه موقعیت هایی بودند با چون این افرادی سر و کار پیدا کرده بود اما همیشه بین او و این قماش آدمها سیم خاردارهای نامرعی وجود داشت او دیزی را آنقدر دلخواه می دید که به شور و حیجان می‌افتاد. اولین بار همراه تعدادی از افسران کمپ تیلر به خانه دیزی رفت و بعد تنها در آن خانه مات و مپوت شد هیچ وقت پا به چنین خانه زیبایی نگذاشته بود اما چیزی که فضای آن خانه را پر از هیجانی نفسبر می کرد حضور دیزی بود. این قضیه برای دیزی آنقدر معمولی و پیش پا افتاده بود که برای او چادرش در کمپ. در این خانه رازهایی وجود داشت که مربوط به اتاق‌خواب‌های طبقه بالا می‌شد که قشنگتر و مجللتر از دیگر اتاق‌خواب‌ها بودند و در راهروهایش جنب و جوش پرنشاطی در جریان بود. ماجراهایی که کهنه نشده بودند تا در صندوقچه‌ای که بوی برگ خشکیده استوقد دوست بدهد، کناری مانده باشد. ماجراهایی بود که جان داشتند. تر و تازه بودند و بوی ماشین براق بر آخرین مدل میدادند. بوی مجالس رقصی که گلهایش هنوز پژمرده نشده بودند. اینکه مردان زیادی عاشق دیزی بودند، او را به هیجان می آورد و همین ارزش دیزی را پیش چشمش بیشتر میکرد. گتسبی حضور آنها را در سرتاسر سر خانه حس می کرد و سایه ها و صدای حیجان های پرشورشان هنوز در هوا پراکنده بود. گتسبی می دانست که تصادفی پایش به خانه دیزی باز شده است و هرچند چند آیندهش به عنوان جی گتسبی درخشان بود، اما در آن زمان جوان فقیری بود که هیچ گذشته ای نداشت و هر لحظه ممکن بود شنل نامرئی انیفرمش از شانههایش بیفتد پایین. بنابراین، بیشترین استفاده را از لحظه ها برد و هرچی که دستش به آن رسید تصاحب کرد. با ولع و بدون هیچ ملاحظه ای. تا اینکه در یک شب آرام اکتبر او دیزی را هم به دست آورد. او دیزی را تصاحب کرد. دختری که حتی حق نداشت دستش را در دست بگیرد. ممکن بود بعدها گتسبی خودش را سرزنش کند. چرا که دیزی را با وعده پوچ به دست آورده بود. منظورم این نیست که او میلیون های خیالیش را وارد معادله کرده بود، نه. اما آنقدر به دیزی اطمینان داده بود که او به نوعی احساس امنیت می کرد. گذاشته بود دیزی فکر کند که او هم از طبقهی نظیر اوست و قادر است تمام و کمال از او مراقبت کند. اما حقیقت این بود که آه در بساط نداشت و خانواده مرفعی هم نداشت که زیر چتر حمایت آنها باشد. او بازیچه ی حکومتی بود که میتوانست او را به هر جای این دنیا بفرستد. اما گتسی خودش را ملامت نکرد و دنباله ماجرا هم آنطور که تصورش را میکرد از آب در نیامد. اوایل شاید فکر میکرد هر چه میخواهد تصاحب میکند و بعد راهش را میکشد و میرود. اما طوری گلویش پیش دیزی گیر کرده بود که برایش چاره جز دنبال کردن آرزویی محال باقی نمانده بود. میدانست دیزی خارقل العاده است، اما تشخیص نمیداد که یک دختر برازنده تا چه هد میتواند خارقل العاده باشد. دیزی در خانه مجلل و زندگی پروپیمان اشرافیش ناپدید میشد و گتسبی را با هیچ رها میکرد. گتسبی حس میکرد با او ازدواج کرده، همین. دو روز بعد، وقتی آنها دوباره همدیگر را دیدند، این گتسبی بود که نفسش بند آمده بود و به نحوی مقبون شده بود. ایوان جلوی خانه دیزی گویی با نور وسایلی که تازه خریده بودند مثل ستاره‌ها برق میزد. وقتی دیزی سمت او چرخید و گتسبی دهان کنجکا و دوست داشتنی او را بوسید، سندلی های حصیری به جیر جیر افتاد. دیزی سرما خورده بود و این باعث شده بود صدایش دورگی و سهرنگی‌تر از همیشه شود. جاتسوی به شدت مبهوت جوانی و رازهایی بود که ثروت نگهش می‌داشت و از آن محافظت می‌کرد. انبوه لباسهای نو را و خود دیزی را که مثل نقره برق می‌زد، پرغرور و ایمن، جایی ورای تمام جنگ و دعوای فقر و بدبختی. رفیق نمی‌تونم برای توضیح بدم که وقتی فهمیدم دوستش دارم چقدر تعجب کردم. تا یه مدتی امیدوار بودم ولم کنم، ولی نکرد، اونم آشقم شده بود، فکر میکرد عقل کلم، چون چیزهایی که من بلد بودم، با چیزهایی که اون میدونست خیلی فرق داشت. خیلی از آرزوهام دور بودم، اما دقیقه به دقیقه بیشتر آشقش میشدم و یه دفعه دیدم دیگه هیچی برام مهم نیست. وقتی میتونستم کنار دیزی بشینم و با گفتن کارهایی که میخوام بکنم اینقدر خو دیگه چه اهمیتی داشت که کارهای مهم انجام بدم یا نه در آن بعد از ظهری که فردایش گتسبی به خارج اعزام شد دیزی در آغوشش بود و مدتی طولانی را به سکوت گذراندند یک روز سرد پاییزی بود و در اتاق شمینه روشن بود و گونههای دیزی گل انداخته بود گاهی دیزی تکان می‌خورد و گتسبی کمی بازویش را جابجا می‌کرد و یک بار هم گتسبی موهای درخشان و تیرش را بوسید. آن بعد از ظهر، مدتی آنها را در آرامش فرو برده بود. انگار که می‌خواست آنها برای جدایی طولانی که از فردا شروع می‌شد، خاطرات امیقی از هم داشته باشند. تا یک ماهی که از شروع عشقشان میگذشت هیچ وقت عمق رابطهشان به اندازه لحظه‌ای نبود که دیزی لب‌های ساکتش را روی شانه گتسبی میسایید و گتسوی نکه انگشتان دیزی را انقدر آرام نوازش می کرد که انگار خواب است. گتسوی در جنگ فوقلاده ظاهر شد. قبل از اینکه به خط مقدم برود سروان بود و بعد از عملیات آرگان درجه سرگردیش را گرفت و فرمانده واحدهای های مسلسل دار شد. بعد از آتش به هر دری زد تا برگردد آمریکا. اما بعضی گرفتاری ها یا کچ فهمیها او را به آکسفورد فرستاد. حالا او دیگر نگران بود چون در نامه‌های دیزی رگههایی از ناامیدی عصبی پیدا شده بود. دیزی نمی‌توانست بفهمد که چرا او بر برنمی‌گردد. دیزی از طرف دنیای بیرون تحت فشار بود و می‌خواست او را ببیند. می‌خواست حضورش را در کنار خودش احساس کند و دلگرم شود از اینکه دارد تصمیم درستی می‌گیرد. دیزی جوان بود و دنیایی که در ذهن ساخته بود پر بود از عطر ارکیده و فخر فروشی دلبرانه و ارکیش های بزرگی که ریتم سال را مینواخت و غم و شادی زندگی را در نقمه های نو می سرود. هر شب ساکسیفون ها نقمه های آهنگ بلیستریت بلوز را تا صبح می زدند و همزمان صدها جفت صندل طلایی و ای خاک برراغ را جابجا میکردند. در آن ساعات دلگیر و خاکستری عصر، همیشه اتاقهایی بود که مدام در تب و شیرین میتپید و اینجا و آنجا چهرههای شادابی بودند که مثل گلبرگهای گل روز با نوای غنبار ترومپت دور تا دور اتاق پخش می شدند. در این دنیای تاریک و روشن بود که دیزی شروع کرد بار دیگر به رسم زمان رفتار کردن، ناگهان باز روزی پنج شش مرد را ملاقات میکرد و دم صبح در حالی که لباس شب منجوق و شیفوندارش با گل های ارکیده پلاسیده پای تختش پخش و پلا بود به خوابی عمیق فرو میرفت و همیشه چیزی درون او فریاد میکشید که تصمیمش را بگیرد. میخواست زندگیش به سرعت سر و سامان پیدا کند و باید تصمیمش را با نیروی میگرفت که در دسترسش باشد. نیروی عشق نیروی پول. نیروی واقعیت های و چرا. با آمدن تامبی و کنن در عواست بهار، این نیرو شکل مشخصی پیدا کرد. هم خودش قوی و سالم بود و هم موقعیتش عالی. هوش از سر دیزی پرید. البته بدون شک پشت این تصمیم کشمکشی جدی در جریان بود، ولی آسودگی خیال هم داشت و نامه وقتی که گتس در آکسفورد بود به دستش رسید. در لانگ آیلند صحر شده بود بلند شدیم تا بقیه پنجره های طبقه پایین را باز کنیم و خانه پر شد از نوری طلایی که به خاکستری میزد. سایه یک درخت روی شبنم ها افتاده بود و پرنده های نامرئی از بین برگ های سرمئی دم صبح شروع به خواندن کرده بودند. هوا حرکت آرام و مفرحی داشت که هنوز به شکل باد در نیامده بود و نوید یک روز خوب خنک را میداد. گتسوی از کنار یکی از پنجره ها برگشت سمت من و نگاه معترزش را به من دوخت فکر نمیکنم دیزی وقت اونو دوست داشته رفیق یاد نره که اون دیروز خیلی حیجان زده بود مردک طوری اون عراجیف رو سرهم کرد که ترسید اون حرفها منو تا حد یه شیاد خورده پا آورد پایین و نتیجه اینکه که دیزی نمیدونست چی داره میگه گتسبی با حالتی افسرده نشست حالا شاید فقط یه دقیقه دوستش داشته همون اول که ازدواج کردن حتی همون موقع منو بیشتر دوست داشته متوجهه که بعد هم حرف عجیبی زد به هر حال این قضیه فقط جنبه جسمی داشته چه استنباطی از این حرف میشد کرد جز اینکه تصور گادسی از رابطه عمق و شدتی غیر قابل داشت وقتی هنوز تام و دیزی در سفر ماه اصل فرانسه بودند، گتسبی با آخرین حقوقی که از ارتش گرفته بود، سفری کوتاه و فلاکتوار به لوی ویل کرد. یک هفته آنجا ماند و به خیابانهایی سرکشید که در شبهای نوامبر با دیزی در آنجا قدم زده بودند و دوباره از آن مکان‌های پرتی که با ماشین سفید دیزی در آن رانندگی کرده بودند گذشت. هنوز خانه دیزی در نظرش از دیگر خانه‌ها پر رمز و راستر و پر زرگ و برختر بود. جای جای این شهر در نظرش حتی بدون دیزی آکنده از زیبایی غنباری بود. با این حس که اگر بیشتر گشته بود شاید دیزی را پیدا می‌کرد، شهر را ترک کرد. رفت با این فکر که دارد دیزی را پشت سرش جا می گذارد. قطار خیلی گرم بود، به راه روباز بین ها رفت و روی یک صندلی تاشو نشست. ایستگاه دور میشد و نماهای پشت ساختمانهای نا آشنا کنار میرفتند. بعد قطار رفت میان مزرعههای سبز و یک لحظه تراموای زردی از کنار قطار رد شد که مسافرانش شاید زمانی افسون سپید چهره دیزی را دیده بودند. حتی آهن پیچ خورد و دور شد از خورشیدی که هرچ پایین تر می رفت. انگار داشت بر سر شهری که ناپدید می شد و دیزی در آن نفس میکشید دست تبرک میکشید. کشید. چنان دستهایش را از هم باز کرد که انگار می خواهد یک مشت هوا یا تکه ای از جایی که دیزی برایش عزیز کرده بود را بغاپد. اما همه چیز با چنان سرعتی دور می شد که چشمهای اشکالودش چیزی نمی دید. میدانست برای همیشه چیزی بهترین و پرنشادترین تکش را از دست داده است ساعت نه بود که صبحانه ما را تمام کردیم و به ایوان رفتیم شب تغییر فاحشی در هوا داده بود و هوا بوی پاییز گرفته بود باغبان تنها خدمتکاری که از خدمتکاران قدیمی گتسبی باقی مانده بود پای پله ها آمد و گفت آقای گتسبی امروز میخوام آب استخر رو بکشم برگ درخت دارن دارم می ریزن. اون وقت هی جلوی لوله ها رو می گیرم. گفت امروز این کار نکن. بعد نگاه تأسفبارش بارش را به سمت من گرداند. میدونی رفیق من تو کل این تابستون یه بارم تو استخر شنا نکردم. به ساعتم نگاه کردم و بلند شدم. دوازده دقیقه وقت دارم تا برسم به قطار. نمی خواستم بروم. حال کار کردن نداشتم. ولی دلیل نرفتنم فقط این نبود. نمیخواستم گذبی را تنها بگذارم. از خیر این قطار و قطار بعدی گذشتم اما بالاخره خودم را راضی به رفتن کردم. گفتم بهت زنگ میزنم. باشه رفیق. حول و زور. آرام آرام از پله ها پایین آمدیم. گفت فکر کنم دیزیم زنگ بزنه. و بیقرار به من نگاه کرد. منتظر بود حرفش را تایید کنم. نا خب، فکر کنم بزنه. خب، خدافز. با هم دست دادیم و من رفتم. هنوز به پرچین ها نرسیده بودم که چیزی یادم آمد. سرم را برگرداندم و از آنور چمن خانش داد زدم. جماعت گندیان، یه موی شما میارزه به سر تا پای نکبت همشون. هنوز هم از گفتن این حرف خوشحالم. این تنها باری بود که از او تعریف کردم چون از اول تا آخر این رابطه به مخالفت کردن من با او گذشته بود. اولش خیلی محترمان سرتکان داد و بعد چهرش به لبخندی درخشان و تفاهم آمیز شکفته شد. انگار که در تمام این مدت سر این موضوع توافق لذت بخشی داشتیم. گتوش شلوار که صورتیش به نقطه درخشانی روی پله های سفید می ماند و من یاد سه ماه پیش افتادم. شبی که برای اولین بار به خانه آبا و اجدادیش آمده بودم فضای سبز محوته و گذرگاه پر از جمعیتی بود که فکر می گتسبی شاید شیاد است و او روی همان پله ها ایستاده بود و در حالی که با آنها خداحافظی می کرد رؤیای نامیرایش را در دل داشت از او به خاطر پذیرایش تشکر کردم البته هم من و هم دیگران همیشه در این باره از او تشکر می کردیم. بلند گفتم: خداحافظ گتسبی، صابونه خیلی چسبید. در نیویورک داشتم مزنه تعداد قابل توجهی سهام را لیست میکردم که خوابم برد. ظهر نشده بود که با صدای تلفن با پیشانی غرق عرق از خواب پریدم. جردن بیکر بود. اغلب همین مواقع به من زنگ می چون با توجه به بی برنامه کارهای او در هتلها، ها، باشگاه ها و خانه های شخصی به راحتی نمی شد او را پیدا کرد. همیشه صدایش از آن طرف خط برایم تر و تازه و خنک بود اما این بار صدایش خشن و خوش بود. گفت از خونه دیزی اومدم بیرون. الان تو همستدم و بعد از زور میخوام برم ساوتمتون. ترک کردن خانه دیزی اقدام درستی بود اما این کارش مرا رنجاند و با شنیدن حرفای بعدش خوشکم زد دیشب رفتار خوبی نداشتی؟ تو این وضعیت چه انتظاری ازم داشتی؟ یک لحظه سکوت کرد و بعد گفت میخوام ببینمت منم همینطور چطور بعد به جای ساعتمتون بیام شهر؟ نه امروز بعد فکر نمی بتونم خیلی خوب امروز بعد بدازور نمیشه، کلی، کار مدت کوتاهی در همین هواشی حرف زدیم و بعد یک دفعه ساکت شدیم نمیدانم کدام یک گوشی را محکم گذاشت اما میدانم که برایم اهمیتی نداشت آن روز نمیتوانستم بنشینم پشت میز چای و با او حرف بزنم حتی اگر دیگر در این دنیا با او حرف نمیزدم چند دقیقه بعد به خانه گتسی تلفن کردم اما اشغال بود چهار بار زنگ زدم تا اینکه تلفن چیه کلافه شده مخابرات گفت که خط تلفن گتسوی را برای مکالمه راه دور با دیترویت باز گذاشتند. برنامه قطارها را برداشتم و یک دایره کوچک دور قطار سه و پنجاه دقیقه کشیدم. بعد به سندلیم تکیه دادم تا فکر کنم. سر ظهر بود. وقتی آن روز صبح در قطار از کنار تپه های خاکسترها رد می شدم، جایم را عوض کردم و سمت دیگر واگن نشستم، فکر می کردم که هنوز تعدادی مردم کنچکاف در آن اطراف می پلکند و پسر بچه ها در خاک و خل دنبال نقطه های سیاه می گردند و مرد وراجی بارها حادثه را تعریف می کند تا اینکه دیگر واقعه آنقدر غیر واقعی می شود که نمی شود تعریفش کرد و داستان تراژیک مرتل ویلسون فراموش می شود، حالا میخواهم کمی به عقب برگردم و بگویم که شب قبل وقتی ما گاراژ ویلسون را ترک کردیم چه اتفاقاتی آنجا افتاد. آنها به سختی خواهر مرتل یعنی کاترین را پیدا کردند. به نظر قرارش را شکسته بود، قراری که آن شب در مورد مشروب نخوردن گذاشته بود. چون وقتی رسید به شدت مست بود و نمیفهمید که آمبولانس قبل از رسیدن او به فلشینگ رفته. وقتی قضیه را برای او جا انداختند از حال رفت. انگار سخت در این بخش ماجرا برایش همین بود یک نفر از سر مهربانی یا فزولی او را سوار ماشین خودش کرده و برده بود سر جنازه خواهرش نیمه شب گذشته بود و هنوز جمعیت فراوانی جلوی گاراژ ویلسون چرخ میزدند. و جورج ویلسون هم توی گاراژ روی کاناپه خودش را به جلو و عقب تاب میداد. تا مدتی در دفتر باز بود و هر کس وارد میشد نگاهی هم به دفتر میانداخت. دست آخر یک نفر گفته بود خجالت داره و در دفتر رو بسته بود. میخایلی ایس و چند نفر دیگر پیش جورج ویلسون بودند. اولش چهار پنی نفر و بعد دو سه نفر. کمی بعد میخایلی ایس مجبور شد از آخرین نفری که مانده بود خواهش کند که یک ربع دیگر هم بماند تا او به کافش برود و یک غوری قهوه درست کند. بعدش هم تا خود صبح تنهایی پیش ویلسون ماند. حوالی ساعت سه بود که کیفیت جملات زیردندانی و نامفهوم ویلسون تغییر کرد. بعد کمی آرامتر شد و شروع کرد به حرف زدن در مورد ماشین زرد. گفت که میداند از چه می توان فهمید صاحب ماشین زرد کیست و بعد هم گفت که دو سه ماه پیش همسرش با دماغ ورم کرده و سر و صورت کبود از نیویورک برگشته بود. به اینجای حرفش که رسید به خود لرزید و دوباره فریاد. ای خدا وای خدایش بلند شده بود. میخایلی ایس با ناشیگری سعی کرد حواسش رو پرت کند. چند سال پیش ازدواج کردی؟ جورج. زد باش. سکن آروم بشینی و به سوالم جواب بدی. چند سال ازدواج کردید؟ دوازده سال. تالا بچه دار نشدین؟ زود باش جورج. آروم بشین. ازت یه سوال پرسیدم. تالا بچه دار شدید؟ سوزکای قهوهی تیره با پوست سختشان تاپ تاپ می‌خوردند به چراغ کم نور و هر بار که می‌خایل ایست صدای ماشینی را میشنید که به سرعت در جاده حرکت می کند، به نظرش عین همان ماشینی می‌آمد که زده و در رفته بود دوست نداشت برود توی گاراژ چون لکه‌های خون جسد روی میز کارمانده بود و ناچار توی دفتر دور خودش می‌چرخید و تا صبح جزء به جزء دفتر را حفظ شده بود گاهی هم می‌نشست کنار ویلسون و سعی کرد آرامش کند. جورج، یکی وقت تو میری کلیسا؟ حتی یه جایی که خیلی وقتم باشه نرفته باشی، شاید من بتونم زنگ بزنم اونجا و ازشون بخوام یک کشیش بفرستم با حرف بزنه. هیچ کلیسایی نمیرم. باید برا خودت کلیسا داشته باشی جورج، برا همچی وقتایی، باید یه بار به کلیسا رفته باشی. مگه تو تو کلیسا ازدواج نکردی جورج، ها؟ گوش کن، گوش کن ببین, ببین چی میگم. مگه تو تو کلیسا ازدواج نکردی؟ خیلی وقت پیش بود تلاش ویلسون برای جواب دادن به سوال میخایلی ایس برای لحظه‌ای ریتم تاب خوردنش را به هم ریخت لحظه‌ای ساکت شد و بعد دوباره همان نگاه نیمه هوشیار و نیمه گیج به چشمهای رنگ باختش برگشت ویلسون در حالی که به میز تحریر اشاره می کرد گفت اون کشو رو باز کن کدوم کشو اون کشو همون یکی میخایلی ایس کشوی را که نزدیکش بود باز کرد. چیزی جز یک غلاده کوچک گران قیمت چرمی با یراغ نقره ای توی کشو نبود. از قرار معلوم نو بود. در حالی که غلاده را در دست گرفته بود گفت این؟ ویلسون نگاه کرده تایید کرد. دیروز پیداش کردم. مرتل سعی کرد یه دلیلی براش سرهم کنه ولی من می دونستم یک کلکی تو کارش هست. منظورت اینه که زنت اینو خریده؟ توی یه دست من کاغذی پیچیده بود و تو میخائیل ایس هیچ چیز عجیب و غریبی در آن ندید و برای ویلسون ده دوازده دلیل سرهم کرد که چرا مرتل میتوانسته قلاده سگ بخرد. چه بسا ویلسون چنین توجیهاتی را از مرتل هم شنیده بود چون باز شروع کرد به از سرگرفتن وای خدا ای خدا و توجیهات تسلا بخش ایس در هوا معلق ماند. ویلسون گفت پس اون یاروم ارتلو کشته و دهانش ناگهان باز ماند کی میدونم چطور پیداش کنم دوستش گفت تو حالت خوش نیست جورج ضربه خوردی و حواست نیست چی میگی بهتر آروم باشی تا صبح ساکت بشینی اون کشتهش. جورج فقط یه تصادف بود ویلسون سرش را تکان داد که نه چشپایش را ها ریز کرد و از لای دهان نیمه بازش مثل آدمی که بیشتر میداند گفت: مم. با اطمینان گفت: "من میدونم. من از اون آدمایی هستم که به همه اعتماد میکنن که به فکر آزار کسی نیستن. اما وقتی یه چیزی برام مسجل بشه دیگه شده." تو اون ماشین یه مرد بود. مرتل دوی تو جاده که به اون یارو حرف بزنه اون ترمز نکرد. میخایل ایس هم این صحنه را دیده بود اما این کار مرتل معنی و مفهوم خاصی برایش نداشت. بیشتر فکر میکرد خانم ویلسون از دست شوهرش فرار کرده است تا اینکه سعی داشته باشد فلان ماشین به خصوص را نگه دارد. آخه، چطور ممکنه زنت اینجوری بوده باشه؟ ویلسون به جای جواب دادن گفت: « خیلی موزی بود. ویلسون باز شروع کرد به ناله کردن و میخایل ایس در حالی که غلاده را دور دستش تاب میداد بلند شد. دوستی رفیقی نداری که بهش زنگ بزنم بیاد پیشت؟ این تنها امید بود هرچند مطمئن بود که ویلسون هیچ دوستی ندارد او از پس زنش هم به زور برمیآمد کمی بعد میخایل ایس متوجه تغییری در دفتر شد پشت پنجره نور سرمهی اول سپیددم دم داشت به سیاهی شب قلبه می‌کرد. و این نزدیک شدن صبح کمی او را خوشحال کرد حدود ساعت پنج بیرون آنقدر روشن شده بود که بشود چراغ را خاموش کرد. ویلسون به سمت تپه های خاکستری بیرون خیره شده بود. آنجا که ابرهای کوچک خاکستری شکل‌های خیالی به خود می‌گرفتند و با نسیم سهرگاه این طرف و آن طرف می‌رفتند. بعد از سکوتی طولانی ویلسون گفت: باهاش حرف زدم. گفتم مرتل تو ممکنه بتونی منو فریب بدی ولی خدا رو نمیتونی. آوردمش تا پنجره بلند شد و رفت طرف پنجره و خم شد و صورتش را چسبان به شیشه. گفتم خدا میدونه تو چه کارایی کردی؟ هر کاری کردی رو خدا میدونه ممکنه منو گول بزنی اما خدا رو نمیتونی میخیل ایس بلند شد و پشت سر ویلسون ایستاد و با تعجب دید که او دارد به چشمان دکتر تی جی اکلبرگ نگاه میکند که تازه در آن گرگ و میشه صبح غول پیکر اما به شکلی کمرنگ از پس شب نمایان شده بود ویلسون باز تکرار کرد خدا همه چیو میبینه میخایل ایس محض اطلاع به او اطمینان داد که این فقط یه آگهیه چیزی میخایل ایس را وادار کرد که چشم از پنجره بردارد و به دفتر نگاه کند اما ویلسون تا مدتی از کنار پنجره جم نخورد صورتش را چسبانده بود به شیشه و سرش را در نور بیرمغ گرگمیش میجم ساعت شش میخیل ایس قصد رفتن کرده صدای ترمز ماشینی در بیرون باعث شد که با خیال راحت ویلسون را ترک کند. یکی سه چهار نفر دیشب بود که قول داده بود صبح دوباره برگردد. با یک صبحانه ی سه نفر برگشته بود و بدین ترتیب هر سه با هم صبحانه خوردند. حالا ویلسون آرامتر شده بود و میخاییل ایس رفت خانه که بخوابد و وقتی چهار ساعت بعد بیدار شد و به سرعت به سمت گاراژ برگشت دید که ویلسون نیست. رد پایش را تا پورت روزولت و بعد گادسیل گرفتند. پای پیاده راه افتاده بود و در گادسیل یک ساندویچ و فنجانی قهوه خریده و نخورده بود. شاید خسته بوده و آهسته راه میرفته چون تا ظهر به گادسیل نرسیده بود. تا اینجا میشد فهمید که وقتش را چطور گذرانده. پسر بچه‌هایی بودند که مردی خلوچل را دیده بودند و رانندگانی که او از کنار خیابان به شکلی عجیب و غریب به آنها نگاه کرد. از این پس سه ساعت هیچ اطلاعی از او در دست نبود. پلیس به استناد حرفی که به میخائیل ایس زده بود که میدونم چطور پیداش کنم، حدس میزد که گاراژ به گاراژ دنبال ماشینی زرد رنگ می‌گشت، اما از طرفی هیچ گاراژداری هم پیدا نشد که او را دیده باشد. شاید ویلسون راه آسانتر و مطمئنتری در اختیار داشت. او ساعت دو و نیم در وست اگدیده شده بود و از کسی سراغ خانه گتسپی را گرفته بود. پس در این ساعت اسم گتسپی را می‌دانست. ساعت دو گتسپی لباس شنایش را پوشید و به خدمتکارش گفت اگر کسی زنگ زد در استخر به او خبر بدهد. در گاراژ یک تشک بادی که در طول تابستان باعث سرگرمی مهمانان شده بود را برداشت و راننده هم به او کمک کرد تا آن را باد کند. بعد دستور داد که ماشین روباز تحت هیچ شرایطی نباید بیرون برود و این عجیب بود زیرا گلگیر سمت راست جلو باید تعمیر میشد. شد. گتسوی توشک به دوش به سمت استخر رفت. یک دفعه ایستاد و کمیانها را محکم تر کرد. راننده از او پرسید کمک نمیخواهد که او سرش را به علامت ناتکان داد و بین درخت های خزان ناپدید شد. هیچ تلفنی نشد اما خدمتکار از خوابش هم زد و تا ساعت چهار منتظر تلفن ماند یعنی تا مدتی بعد از اینکه دیگر کسی نبود تا اگر تلفنی زده شد به او خبر بدهد. به گمانم گذفی خودش هم میدانست که تلفنی در کار نخواهد بود شاید دیگر برایش مهم هم نبود اگر این نظر درست باشد او فهمیده بود که دارد این دنیای گرم گذشته را ترک میکند دنیایی که در آن بهای گذافی برای زندگی طولانی با رؤیا پرداخته شاید از پشت برک های ترسان و لرزان به آسمان غریب نگاه میکرد و از اینکه میدید چقدر گل رز شکل است و آفتابی که بر چمن تازه رسته افتاده چقدر سرد بر خودش می درزید. یک دنیای جدید مادی بدون اینکه واقعی باشد جلوی چشمش بود. جایی که ارواح بیچاره رؤیاها را مثل هوا نفس میکشیدند و سرگردان این طرف و آن طرف میپلکیدند. درست مثل آن شبه خاکستری و عجیب و غریب که از بین درختان درهم و برهم به سمت او آمد. راننده که یکی از آدمهای وولزف هایم بود صدای تیرها را شنید. بعدها، فقط همین را گفت که هیچ فکری به ذهنش نرسیده است. من از ایستگاه با ماشین یک راست به خانه گتس رفتم بالا رفتن پر از هیجان و استراب من از پله های جلوی در اولین چیزی بود که ممکن بود هر بیننده ای را مسترب کند. اما شک ندارم که آنها دیگر میدانستند. بدون اینکه حرفی بزنیم چهار نفری دویدیم طرف استخر. من بر راننده و سرخدمتکار و باغوان در استخر جریان آب تازه که از یک طرف وارد می و به سمت راه آب استخر در طرف دیگر می رفت، حرکت ظریفی داشت که به سختی قابل تشخیص بود. با لرزش های کوچکی که هیچ شباهتی به موج نداشتند. تشک بادی بدون هیچ نظم و ترتیبی روی استخر این طرف آن طرف می رفت و حتی نسیمی کوچک که به سختی می توانست چینی بر آب بیاندازد کافی بود تا مسیر اتفاقی تشک با بار اتفاقیش به هم بخورد تماسی کپ برگ آهسته توشک را گرداند و مانند پرگار دایره نازک سرخی بر آب رازم کرد وقتی گتسی را به سمت ساختمان بردیم باغبان جنازه ویلسون را کمیان طرفتر میان چمنها دید و قتل عام کامل شد